حکایت منجمی به خانه در آمد، یکی مرد بیگانه را دید، با زن او به هم نشسته، دشنام و گفت، فتنه و آشوب برخواست، صاحب دلی که بر این واقف بود گفت، تو بروج فلک چه دانی چیست که ندانی که در سرایت کیست؟